الله سوره شعرا به نام الله, الله که بخشاگنده و با رحمت است. است. تاسیم میم این آیات کتاب بیان کننده حقایق است. گوی از شدت عندو به خاطر این انها ایمان نمیآورند آورند می خواهی جانت را از دست بدهیم اگر ما بخواهیم می توانیم موجزه از آسمان بر آنها نازل کنیم تا گردنهایشان در مقابل آن خاضع گردد بدان هیچ ذکر جدیدی از جانب خدای رحمان برایشان نمی آید، مگر آنکه از آن اعراض می کنند آنها حقایق را تکذیب کردند و به زودی اخبار حقایقی که به تمسخر می گرفتند به آنها خواهد رسید جزای دستاوردشان را خواهند دید آیا نمی بر روی زمین چه گیاهان متنوع و مفیدی رویانده در همه آنها نشانه‌هایی از حقیقت است، اما اکثرشان حقایق را باور ندارند بدان که پروردگارت قدرتمند و با گذشت است و یادار هنگامی که پروردگارت به موسا داد که به سوی قوم ستمگر حرکت کن به سوی قوم فرعون آیا نمیخواهند حرمت خدا را نگاه دارند؟ موسی گفت پروردگارا می ترسم که مرا تکذیب کند سینه تنگ می شود ظرفیتم برای انجام چون رسالتی زیاد نیست و زبانم بویا نمی باشد را نیز رسالت ده تا با من بیاید از دید آنها جرمی دارم در مورد قتل یکی از فرعونیان که سالها پیش اتفاق افتاده مرا مجرم میدانند و میترسم مرا به قتل رسانند خدا گفت هرگز این چنین نمی شود با معجزات من به سوی آنها بروید و بدانید که ما با شما هستیم و همه سخنان را میشنویم. به سوی فرعون بروید و به او بگویید که ما بری از سوی پروردگار جهانیانی و بنی اسرائیل را با ما رهسپار کن فرعون گفت آیا ما تو را هنگامی که تفلی بیش نبودی پرورش ندادیم و چند سالی از عمرت را نزد ما زندگی نکردی و سرانجام آن کارت را که نمی انجام دهی انجام دادی و یک نفر از ما را کشتی بطن تو از کافران موسی گفت آری من این کار را کردم اما در حالی که قافل و بیخبر بودم و هنگامی که از مجازات شما ترسیدم از نزد شما فرار کردم اما خداوند بر من حکمت و دانشی عطا کرد تا حقایق را ببینم و مرا از پیامبران قرار داد و منت این نعمت پرورش دادن من در کودکی را بر سر من می‌گذاری در حالی که تو بر اسرائیل را برده ساقتی و من نتوانستم در خانه خودم پرورش یابم فرعون گفت این پروردگار جهانیان دیگر کیست موسی گفت اگر اهل یقین باشید او پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست باشد آنگاه فرعون رو به اطرافیانش کرد و گفت آیا نشنیدید گفت پروردگار شما و پروردگار نیاکان شما فرعون گفت پیامبری را که برای نجات شما فرستاده دیوانه است موسی گفت اگر عقلتان را به برید خواهید فهمید که او پروردگار مشرق و مغرب و آنچه میان آنهاست میباشد. باشد. فرعون گفت اگر خدایی غیر از من اختیار کنی تو را زندانی خواهم کرد. موسی گفت حتی اگر معجزه روشنگر برایت بیاورم؟ فرعون گفت اگر راست میگویی، آن را بیاور تا ببینم. آنگاه موسی عصایش را بر زمین افکند و بیدرنگ مار بزرگی نمایان شد و دستش را در گریبان خود فرو برد و انگامی که بیرون آورد در برابر بینندگان سفید و روشن بود فرعون به بزرگان پیرامونش گفت این مرد یک جادوگر بسیار داناست میخواهد شما را از سرزمینتان به واسطه جادویش بیرون کند چه چارهی تدبیر می گفتند او و برادرش را نگه دار و پیک به شهرهای مختلف بفرست تا هر جادوگر دانایی را که میابند نزد تو آورند سرانجام جادوگران در روز معین در وعدگاه جمع شدند و به مردم گفته شد آیا همتان شده شدید؟ تا اگر جادوگران پیروز شدند از آنها تباییت کنیم؟ بنگامی که جادوگران آمدند به فرعون گفتند آیا اگر ما بر موسا پیروز شویم، پاداش قابل توجهی خواهیم داشت؟ فرعون گفت آری بیشک همه شما از مقربان درگاه من خواهید بود موسا به آنها گفت آنچنان که می خواهید، بیاندازید بیاندازید آنگاه جادوگران تنابها و عصاهای خود را بر زمین افکندند و گفتند به عزت فرعون قسم که ما پیروزی سپس موسی عصای خود را بر زمین افکند و ناگاه تمام چشمندیهای دروغین آنها را بلعید در این هنگام جادوگران به سجده افتادند گفتند اکنون به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم همان پروردگار موسا و هارون فرعون گفت قبل از آن به شما اجازه بدهم ایمان آوردید بیشک موسا استاد شماست هم اوست که جادوگری را به شما آموخته به زودی خواهید فهمید که قدرت از آن کیست دست و پایتم را به خلاف یک دیگر قط می کنم و همگی شما را بدار می آویزم گفتند با نیست در عوض به سروی پروردگار من باز می گردی. ما شدیداً امیدواریم که پروردگار من گناهان من را مورد آمرزش قرار دهد بدان که ما نفستین کسانی هستیم که ایمان آوردیم و به موسا وحی کردیم شبانه بندگانم را از مصر خارج کن بدعاً آنها شما را تعقیب می کنند. و فرعون مأمورانی برای جمع کردن سپاه به شهرهای مختلف درستاد و گفت اینها گروهی اندکند و باعث خشم من شدند در حالی که همه ما آماده مبارزه ایم سرانجام ما فرعومیان را از باقها و چشم سارها خارج کردیم و از گنجها و قصرهای مجلل دور ساختیم این چنین کردیم و بنی اسرائیل را وارث آنها ساختیم فرعونیان هنگام تو آفتاب آنها را تعقیب کردند. هنگامی که دو گروه همدیگر را دیدند، یاران موسی گفتند ما گرفتار شدیم. موسا گفت هرگز چنین نیست، پروردگارم با من است و راهنماییم خواهد کرد. پس به موسا وحی کردیم که اصایت را به آب دریا بزن تا دریا شکافته شود. وقتی که موسا این کار را کرد و راه باز شد هر بخشی از آب چون کوهی بزرگ بود آن گروه دیگر را به آب نزدیک کردیم آنگاه موسا و تمام کسانی را که با او بودند نجات دادیم و دیگران را غرق کردیم در این ماجرا عبرتی است زیرا اکثرشان به حقیقت ایمان نیاوردند. بدان که پروردگار تو قدرتمند و با است سرگذشت ابراهیم را برایشان بخاند هنگامی که به پدرش و قومش گفت چه میپرستید گفتند بوتهای را می پرستیم که همواره مشغول عبادتشان هستیم آیا وقتی آنها را به دعا می خانید صدایتان را میشنوند آیا می توانند سود یا زیانی به شما برسانند؟ گفتند نیاکان را یافتیم که این گونه عمل می کردند. ما نیز از آنها تبعیت می کنید. آیا می فهمید که چه می پرستید؟ شما و نیاکانتان؟ ابراهیم گفت همه آنها دشمنان منند مگر پروردگار جهانیان که دوست من است. الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسكي وإذا مرضت فهو يشفي والذي يميتني ثم يحيي والذي أطمع أن به همان خدایی که مرا خلق کرده هدایتم می کند همان که مرا تعام میدهد و سیابم می کند و هنگامی که بیمار شدم شفایم میدهد دهد همان که مرا می, می و دوباره زنده می کند همان کسی که به او امید دارم تا از گناهانم در روز قیامت درگذرد، پروردگارا به من حکمت عطا کن و مرا به صالحین ملحق نما برای من در میان امتهای آگنده زبان صدق قرارده و مرا از وارسان بهشت پرنعمت کن و پدرم را بیامرز زیرا از گمراهان بود آن روز که همه برانگیخته میشوند مرا رسوا مکن روزی که نه مال به درد و نه تنها چیزی که به درد می خورد، این است که کسی با قلب سلیم سر تسلیم حق به سوی خداوند بزرگ بیاید و در آن روز بهشت برای حرمت حریم الهی نزدیک می شود و جهنم برای گمراهان آشکار میگردد و به آنها گفته می شود پس خدایانی که به جای الله پرستش می کردید کجایند آیا می توانند شما را یاری کنند یا حتی خودشان یاری می سرانجام سر انجام هم معبودان دروغین و هم آبدان گمراهشان به جهنم سرازیر می شود و همه لشکریان ابلیس نیز چون این سرنوشتی دارند در حالی که با دیگر نظامی کنند و میگویند به خداوند بزرگ سوگند که ما در یک گمراهی واقعی بودیم آنگاه که شما را معبودان دروغین را با پروردگار جهانیان یک سان ما را فقط مجرمان گمراه کردند و اکنون هیچ شفیعی و پناهی نداریم و هیچ دوست سمیمی در کنارمان نیست اگر یک بار دیگر برگردیم، قطعا از اهل ایمان خواهیم بود بدانید که در تمام اینها عبرتی است زیرا اکثرشان ایمان نیاوردند راستی پروردگارت قدرتمند و با است الله اکبر. الله قوم نوح نو پیامبران را تکذیب کردند هنگامی که برادرشان نوح به آنها گفت چرا حرمت خداوند را نگاه نمیدارید؟ من برای شما پیامبری امین هستم صدق الله و و ما من اجل. این الا على رب حرمت عوامر خداوند را نگاه دارید و از من اطاعت کنید من از شما به خاطر انجام رسالتم هیچ مزدی نمیخواهم زیرا مزد و پاداش من فقط بر عهده پروردگار جهانیان است حرمت عوامر خداوند را نگاه دارید و از من اطاعت کنید گفتند به تو ایمان بیاوریم در حالی که اراذل از تو پیروی میکنند دانش و آگاهی من بر عمل آنها احاطه ندارد حساب کار آنها فقط بر عهده پروردگارم است البته اگر بفهمید و من هیچگاه اهل ایمانی را که شما آنها را عرازل میگوید از خودم طرد نمی کنم و من کسی نیستم جز یک هشدار دهنده واقعی گفتند ای نو اگر از این حرفها دست بر نداری بدون شک سنگسار سار می شدی. نو گفت پروردگارا را گوم من مرا تقسیب کردند. پس بین من و آنها راه چاری به گشا و من و اهل ایمانی را که با من هستند از دست آنها نجات بخش. سرانجام ما، نو و هر کس را که با او در آن کشتی مملو از موجودات بود نجات دادیم. و بقیه را غرد به راستی در این ماجرا عبرتی است زیرا اکثرشان ایمان نیاوردند بدان که پروردگارت قدرتمند و باگزشت است قوم عاد پیامبران را تکذیب کردند هنگام اینکه برادرشان هود به آنها گفت چرا حرمت خداوند را نگاه نمی دارید؟ من برای شما پیامبری امین هستم فتک الله و وما و ما علیه من اجر این اجریه الا على رب العالمین پس حرمت عوامر خداوند را نگاه دارید و از من اطاعت کنید من از شما به خاطر انجام رسالتم مزدی نمی خواهم زیرا مزد و پاداش من فقط بر عهده پروردگار جهانیان است چرا بر روی هر بلندی بیهوده برجایی میسازید سازید؟ چنان محکم که میپندارید در آن جاودانه خواهید بود و انگامی که بست مجازات کسی را دارید ظالمانه مجازات میکنید حرمت عوامر الهی را نگاه دارید و از من تباییت کنید به ترسید از خدایی که شما را به آنچه که خود می دانید یاریتان رسانده است یاریتان رسانده است به انواع چهار پایان و فرزندان باغها و چشم سارها من برای شما از عذاب روز بزرگ بیمناکم غافلانه گفتند چه ما را موعظه کنیم و چه نکنی برای ما یک سال هست. این حرف همان شیوه قدیمی هاست و ما هرگز عذاب نمی شدیم سرانجام او را تکذیب کردند و ما نیز همشان را هلاک کردیم بدانید که در این ماجرا نشانه یاست زیرا اکثرشان به حقایق ایمان نیاوردند بدان که پروردگارت قدرتمند و باگذشت است قوم سمود پیامبران را تکسیب کردن هنگامی که برادرشان صالح به آنها گفت چرا حرمت خداوند را نگاه نمی دارید من برای شما یک پیامبر امین هستم فتکوا الله و اقیعون و ما من اجر این اجریه الا رب پس حرمت عوامر الهی را نگاه دارید و از من اطاعت کنید من از شما به خاطر انجام رسالتم مزدی نمی خواهم زیرا مزد و پاداش من فقط به عوضه پروردگار جهانیان است آیا می پندارید شما را با این نعمت های عطا شده در امنیت مطلق رها میکند در این باغ و چشم سارها در این کش دارها و نرخ ها که شیرین و رسیده است و شما از کوه ها خانههایی می تراشید و در آن خوشگذرانی میکنید. حرمت اوامر الهی را نگاه دارید و از من اطاعت کنید و از فرمان افراد گراگان اطاعت مکنید. همان کسانی که در زمین، فساد و تباوی میکنند و اهل اصلاح و خدمت نیستند گفتند ای ساله تو فقط جادو شده ای. تو هم فقط بشری مثل ما هستی. اگر راست میگویی که پیامبری معجزهی برای ما بیاور ساله گفت این است که سهم آبی دارد همچنان که شما در روزهای معین سهم آبی دارید به آن آسیبی نرسانید عذاب روز بزرگ سراپایتان را فرا می‌گیرد. سرانجام شطور را کشتند سپس پشیمان شدند. پس عذاب الهی آنها را گرفتار کرد. بدانید که در این ماجرا عبرتی است. زیرا اکثرشان به حقایق ایمان نیاوردند. بدان که پروردگارت قدرتمند و باگذشت است. قوم لوت پیامبرم را تکذیب کردند هنگامی که برادرشان لوت به آنها گفت چرا حرمت خداوند را نگاه نمی دارید من برای شما پیامبری امین هستم فتکوا الله و اطیعون و ما علیه من اجر این اجری الا علی رب العالمین پس حرمت عوامر الهی را نگاه دارید و از من تبعیت کنید و من به خاطر انجام رسالتم از شما مزدی نمیخواهم زیرا مزد و پاداش من بر عهده پروردگار جهانیان است. چرا از میان جهانیان شما با نران می و همسرانی را که پروردگارتان برای شما آفریده رها میکنید نه شما قومی منحرف هستید. گفتن ای لوت اگر این حرف ها را بس نکنی از شهر تبعید می لوت گفت من دشمن عملکرد شما هستم پروردگارا من و خانواده ام را از آن اینها انجام می نجات بخش سرانجام او و خانوادهش را نجات دادی مگر پیرزنی زنی که در میان آنها ماند به سان دیگران را هلاک کردی بارانی از بلا برانها واریدی و چه باران بدی بود باران انذار شدگان در این ماجرا عبرتی است زیرا اکثرشان به حقایق ایمان نیاوردند، بدان که پروردگارت قدرتمند و باگذشت است اصحاب ای که پیامبران را تقضیب کردند هنگامی که شعید آنها گفت چرا حرمت خداوند را نگاه نمیدارید من برای شما پیامبری امین هستم فتک الله و اطیعون و ما اسألکم علیه من اجر این اجریه الا على رب العالمین پس حرمت اوامر الهی را نگاه دارید و از من اطاعت کنید و من برای انجام رسالتم از شما مزدی نمیخواهم زیرا مزد و پاداش من فقط بر اهده پروعدگار جهانیان است حق به پیمانه را ادا کنید و دیگران را به خسارت نیندازید با ترازوی درست و دقیق وزن کنید و حق مردم را کم ندهید و در زمین فساد و تباهی به راه حرمت اوامر خدایی که شما و اقوام پیشین را آفریده نگاه دارید گفتهند ای شعیب تو را جادو کردند تو هم یک بشر مثل ما هستی هرچند تو را یک دروغگو می‌پنداری اگر راست می‌گویی که پیامبری پاره‌ای از آسمان را بر سر ما بیانداز شعیب گفت پروردگارم به عمل کرد شما آگاهتر است سرانجام او را تکذیب کردند و عذاب آن روز عبری آنها را فرا گرفت حقیقتا آن عذاب روز بزرگ بود. در این ماجرا عبرتی است زیرا اکثر آنها به حقایق ایمان نیاوردند بدانکه که پروردگارت قدرتمند و باگذشت است و این قرآن از سوی پروردگار جهانیان نازل شده است روح الامین آن را نازل کرده است آن هم بر قلب تو تا مردم را نسبت به دستاوردشان هشدار دهید آن را به زبان واضح و روشن نازل کرد نشانه های آن در کتب آسمانی گذشتگان موجود است آیا همین نشانه کافی نیست که علماء بنی اسرائیل از آن باخبرند؟ اگر آن را بر یکی از مبهم نازل می کردیم و او آن را برایشان می خواد قطعا ایمان نمی آوردند. ما این اینچنین قرآن را در قلب های مجدمان نفوز می دهی. آنها با آن ایمان نمی آورند مگر زمانی که عذاب دردناک را با چشم خود ببینند آن عذاب ناگهان به سراغشان می آگد در حالی که کاملا قافل و بیخبرند و میگویند آیا به ما مهلتی خواهند داد آیا باز نسبت و عذاب ما عجله می کنند دیدی که سالها در زندگی دنیا از نعمت‌ها فردارشان کردیم و انجا از عذاب الهی بانها با وعده داده شده بود گرفتارشان کرد و آن نعمت‌ها که در دنیا داشتند اینجا به کارشان نیامد ما اهل هیچ دیاری را حلاق نکردیم مگر آنکه قبل از آن هشدار برایشان فرستادیم تا حراقی را یادآور شدند و ما هیچ گاه ظالم نیستی این قرآن را شیاطین نازل نکردند آنها شایسته این کار نیستند و قدرتش را هم ندارند شیاطین از شنیدن وحی و اصلاح آسمانی محروم شدند پس هیچگاه خدای دیگری را با الله مخان که مستحق عذاب میگردی پیشابندان نزدیکت را هشدار ده و برای اهل ایمانی که از تو تبعیت می‌کنند، نهایت احترام را قائل شد و اگر از فرمان تو سرپیچی کردند، بگو من از عمل کرد شما بیزارم و بر خداوند قدرتمند و باگذشت توکل کنم. همان خدایی که هرگاه به عبادت نیستی، تو را میبیند و حرکت تو را میان و سجده کنان نظاره می‌کنند. راستی او شنوا و داناست. آیا شما را آگاه کنم که شیاطین بر چه کسانی نازل میشوند؟ شیاطین بر گناه که بسیار دروغ میگویند نازل میشوند. شیاطین آنچرا که شنیده اند به پیروان خود خود می میکنند و اکثرشان دروغ گویند. این آیات شعر نیستند و پیامبر نیز شاعر نیست. زیرا شعرها را گمراهان تبعیت می کنند. آیا نمی بینی که شعرها در هر وادی حیران و سرگردانند؟ و چیزهایی می گویند که به آن عمل نمی کنند؟ مگر کسانی که به حقایق ایمان بیاورند و عمل کردی نیک و شاگسته داشته باشند؟ هم آنهایی که بسیار یاد خدا می کنند و چون مورد ظلم واقع شدند به مقابله برمی خیزند. بیکز کسانی که ظلم کردند به زودی خواهند فهمید که بازگشتشان به کدام این مکان است الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصم من بعد ما ظلموا و سیعلمو الذین ظلمو ایم صدق الله العلي العظيم خداوند بود <تصفح>